ماه بالای سر آبادی است اهل آبادی در خواب است باغ همسایه چراغش روشن من چراغم خاموش ماه تابیده به بشقاب خیار به لب کوزه آب قوکها ها می خانند. مرق حق هم گاهی کوه نزدیک است پشت افراها سنجت ها و بیابان پیداست سنگ ها پیدا نیست گلچه ها پیدا نیست سایههایی از دور مثل تنهای آب مثل آواز خدا پیداست نیمه شب باید باشد به اکبر آن است دو وجب بالاتر از بام آسمان آبی نیست روز آبی بود یاد من باشد فردا بروم باغ حسن گوج و بخرم یاد من باشد فردا لب سلخ ترهی از بوزها بردارم ترهی از جاروها سایه در آب یاد من باشد هرچه پروانه که میافتد در آب زود از آب در آورم. یاد من باشد فردا لب جوی هوله ام هم با چوب بشویم. یاد من باشد، تنها هستم، ما بالای سر است سلام من مستفام و اینجا رادیو هجده بنفشیه که یه بار دیگه اومده تا بلند بلند براتون آواز بخونه و بخنده و بگه که بیاین تا مهربون باشیم. باور کنین آخر سر همه همه همه, همه, همه اونایی که تو سازمانهای بزرگ جهانی هر روز کلی جلسه میذارن و حرف میزنن و بحث میکنن هی hey بحث میکنن راجب تمام بدبختی های نوع بشر، به این نتیجه میرسن که راه حل و درمون همه جنگ‌ها و گرسنگی‌ها و بدی‌های این عالم مهربونیه. آخر سر میان و یه هرمونی میسازن و با این هواپیما سمپاش بزرگا پخش میکنن رو سر این کره زمین که همه مهربونی و نفس بکشن و بعد دیگه نه جنگی هست و نه توفنگی و نه بچه تنهایی تنهایی عجب واجه وحشت انگیزیه یکی از ترسای همه آدما و پرنده ها و درختها و سگا و گربه ها و ماهی ها و عروسک ها و عددا و حتی خود تنهایی تنها موندنه اصلا آدم ازدواج میکنن و بچه دار میشن و کار میکنن و درس میخونن و زندگی میکنن که تنها نباشن اصلا آدم عاشق میشن که تنها نباشن راستشو بخواین هر وقت به سیزده فکر میکنم یاد تنهایی میفتم اینکه که چی شداخه که این عدد اینقدر تنها شد اصلا چی میشه که بعضی آدم و بعضی چیزها اینقدر تنها میشن شاید سیزده نماد همه اوناییه که به یه دلیلی خیلی تنها شدن و بیکس من مستفام و شما به قسمت سیزدهم از فصل دوم رادیو هجده بنفش گوش میکن. اپیزودی که قرار تقدیم شه به همه سیزده بودنهای این عالم یکی از عادتهای قدیمیم نشستن دم در جنوبی خونم بود. اونم نصف شبا. خیابون پر رفت آمدی میتونست باشه. یعنی رو داشت. این کار را از خیلی وقت بیشترا میکردم. روی پله های سنگی جلوی خونه هستم و شبگردیه ی آدم را نگاه میکردم. گاهیم یه چایی یا یه بهمن شبنشینیام و به زیافتی وصف تبدیل میکرد. شبیه این پیرزن پیر, پیر ماسوله ای میشینندن دم خونه رو نگاه میکنن ده آدما آدما آدم رد میشن و تو نگاهشون میکنی فقط بعضیاشون تو رو تو تاریکی شب میبینن بعضیا فقط صدای ضبط ماشینشون میاد که گاهی خواننده ای رو میشناسی و شعر و بلدی و باقی شعر رو تا جایی که مخ کنه برای خودت تکرار میکنی منم سالها بود بعد از کل روز تنها بودنها و کار کردنها تنها تفریح و دلخوشیم نشستن روی اون سنگای سفید بود و زدن چند تا پوک گنده به سیگارم جوری که مثلا اگه پوک ها محکم نباشه میمیرم یا اصلا انگار این آخرین سیگار و پوکای های زندگیمه خمیازه های کشتا. سیگار پشت سیگار شب گوشه ای سیگار پشت سیگار این روح خسته هر شب جان کندنش قریزیست لعنت به این خدا زاف سیگار پشت سیگار پای چپ جهان را با عرهی بریدند چپ پاچه های شلوار سیگار پشت سیگار در انجماد یک تخت این لاش منفجر شد پاشیده شد به دیوار سیگار پشت سیگار گوش کن دورترین مرق جهان میخواند شب سلیس است و یک دست و باز شمعدانی ها و صدادارترین شاخه فصل ماه را میشنوند پلکان جلو ساختمان در فانوس به دست و در اصراف نسیم گوش کن جاده صدا میزند از دور قدم های تو را مردم از این رحایی در کوچه های بونبه است انگارها انگار سیگار پشته سیگار مپوت رد دوده این شکفه ها قدیمیست مقمن به اصل تکرام سیگار, سیگار. تو این شب نشینی های من خیلی ها رو دیدم و حتی با خیلی آشنا شدم تازه اونجا بود که فهمیدم آدمای تنها کارشون شب گردیه. انگار خودشونم عادت کردن که شب وقتی همه خوابن بیان بیرون یه شبی اون اوایل که این شب نشینی های رو آغاز کرده بودم بسته یه کاغذی بهمنم و از توی جیبم در رو و آخرین نخ رو آتیه زدم یهو جیغی کشیدم و عصبانی شدم از خودم. توی تاریکی آخرین نخ سیگار و از طرف فیلترش آتیش زده بودم. داشتم با فیلترش کلنجار میرفتم تا به کنمش که یهو یه دست جلوم دراز شد. یه دست چروکیده پر از پینه و خاله‌ای که معلوم بود توی طول زمان از شدت کار روی دسته‌ی اون غریبه به وجود اومدن. تو دسته‌ی اون غریبه یه بسته بهمن سربسته بود. سرم و بالا آوردم و دیدم که یه پیرمرده تو توی لباس نارنجی سوپوری ناراحت نشین اون زمان به سپور هنوز نمیگفتن پاک بان کلبلی هم خودش به خودش میگفت سپور کلبلی سپور محلمون بود و این آغاز دوستی ما دو نفر بود داستان کلبلی داستان شب تنهایی یه مرده با یه جاروی بلند تو دستاش و یه کلاه قلاب بافی شده یه سبز روی سرش داستان یک تنهایی نهادین شده که کل دنیا فقط خودشو داشت تنهایی موجود عجیبیه ها دلم به پاکی دامان قنچه میلرزد که بلبلان همه مستند و باغبان تنها کربلی از وقتی شد کربلی که رفت کربلا از همون زمان بود که شال و کلاه سبزش تو سرما و گرما رو سر و دور گردنش بودن کربلی سپور شهرداری بود. از خیلی قدیم قدیما از اون شبی که کربلی رو شناختم گاهی وقتا کل محل رو باهاش راه میرفتم و صدای جاروش میشد موسیقی متن خاطراتی که برام تعریف میگرد از این چی شده که سپور شده تعریف کرد؟ از اینکه چی شده که اصلا اینقدر تنها شده؟ یه شب گفت من که دنیا اومدم مادرم مرد. بابام گفت این بچه نحسه. این نحسی موند روی ما مهندس. منو مهندس صدا می‌زد آخه. یه بار تعریف کرد که یه روز که رفته بود شهرستان به محض ورودش خونه عموش آتیش میگیره. کلبلی کلی خاطره داشت از بدبیاریای آدما بعد از اینکه اینا رو میگفت در بیشتر مواقع میخندید. ازش که میپرسیدم چرا میخندی میگفت به خاطر این حرفاشون. ولی خب بعضی اوقات خودمم فکر میکنم که نحسم. بعد با صدای بلندتری میخندید. کربلی پیرمرد شوخی بود کلن همیشه دوست دو ستا جوک جدید تو جیبش داشت که از مجله ها کنده بود و برام میخوند جز بوریده های روزنامه ها کربلی یه سطل پر آشغال گوشت و برنج و نونم همراش داشت میداد به گربه های محل همیشه ها به خودم فکر میکردم اگه آدم راست بگن و این پیرمرد مرد نحس باشه عجب نحسه تنهای مهربونیه مثل یه کوب بلند مثل خوب خواب یه مرد بود یه مرد با دستای بغیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه من بود یه من اینکه چرا بعضی از آدما ها شدن قدم و گربه های سیاه شوم یا سیز دهنه سجقدانه مبارک خب قاعدتا یک داستان استوره ای تو رو یک دلیل تاریخی و بعضا خرافی پشت همه ایناست داستانایی که وقتی میری سراغشون تازه میفهمی که اممولو که بابای اموی پسرخاله عروستون توی عمر شریفش چند تون تخمه مرغ بی زبون و چقدر علکی پلکی حیف و میل کرده سر این خرافه های مجلس گرم کن با تشنه به عکسی چشم me not a sister but ine katre katre katreya oh achreya dar shabe dichapeesh in chara صدا. صدا. صدای پار. صدای پار. یه شب از کربلی پرسیدم صبحا چی کار میکنه کربلی هم گفت باغمونی، سامپاشی و هرس کربلی موتورگازی قدیمی هم داشت یه شب یکی از گلدونای خیلی مریضم و دادم بهش گفتم ببر و رو عوض کنه و یکم بهش برس گل گرون و نایابیه خدا رو چه دیدی شاید خوب شد جالبه بعد یه هفته یه شب که دمه درد نشسته بودم و یادمم میست داشتم چی می نوشتم صدای موتورگازی كلبلی اومد و سرمو آوردم بالا کالبلی از موتور پیاده شد و زنجیر گندهٔ موتورشو بست و از سوی گلدونو در اولش فکر کردم یکی جدیده گلدون من همهی برگاش مرده بود اون شب موقعی که از فلاسکه چایی برای کَلبلی چای میریختم بهش گفتم کَلبلی فکر کنم نحسیت رو من اثری نداره ها و هر دو خندیدیم کَلبلی مرد خوبی بود چطور ممکن بود مرد به اون خوبی که کل خیابونا رو برق میندازه و برگای درختار رو نوازش میکنه و برای گربه ها حتی سیاسورته زشتاشون قضا میاره گلدونا رو زنده میکنه و از همه مهمتر یه بث بهمن دست نخورده رو به که نمیشناسه می‌بخشه چطور می‌تونه نحس و پلید و بد باشه به نظر منم خنده بود ولی وقتی خوب نگاه کردم دیدم کلبلی تنهاست خیلی تنها. آدما وقتی از ارتباط با آدمایی دیگه ناامید میشن پناه برند به دوستی با گلو گیاه ها و حیمون ها. اجرایی اون تخم مرغ و زغال و نحسی پرون رو بلدین؟ زیاد سخت نیست. مواد لازم: یک عدد عمه مولوک، یک عدد تخم مرغ، یک نصف زغال، هر نوع زغالی، اهم از کبابی و قلیونی و غیره و بود نداره. به مقدار لازم. آدم جهت تشویق ام مولوک و حرفاش یک عدد آدم که بدبیاری آورده به هر دلیلی تو زندگیش و از همه مهمتر که رکن اساسی این مجلسه یک نفر مخالف خب حالا پروتکل اجرایی این عمل بنده خدا پسندانه ام ملوک میشینن و یکی یکی اسما رو مینویسن رو تخم مرغ و یهوی روی یه اسم که در بیشتر مواقع همون مخالف جمعه تخم مرغ شرت میشکنه و بله یه دو جین چشم قذبناک به طرف اون فرد مخالف میگرده و همه زیر لب دعا می خونن که نکنه فرد خاطی با چشا و وجود نحسش اونا رو هم دوچاره بعد بیاری بکنه حالا یکی نیست به این دوستان بگه به خدا قسم پوسته تخم مرغ نازکه و با یه پقی میشکنه و اون جوری که عمم ملوک با قیز این بیچاره رو فشار میده منم اگه فشار میداد چشام از تو جزایر لانگرهانسم میزد پیرو بعد از مدت‌ها کلبلی از من پرسید کارت چیه مهندس کلن کلبلی آدم فضولی نبود این یکی از ویژگی‌های کمیاب بشری بود توی این مرد من با خنده گفتم تو که چند ماهه به من میگی مهندس کلبلی خندید و گفت واسه من همه یا دکترن یا مهندس خندم گرفت گفتم من روزنامه نگارم کلبلی یهو جدی شد و گفت یعنی می نویسی یعنی بلدی بنویسی بابا جو نوشتن سخت‌ترین کار دنیاست از اون شب کلبلی به من به جای مهندس گفت باباجون. یه شب پاییزی که معلوم بود زیر یونیفرم نارنجیش یه عالم لباس پوشیده و شالش و دور سر و صورتش بسته بود به هم گفت که دلش میخواسته همیشه ها بنویسه داستان زندگیشو منم گفتم خب مینویسم چشاش از خوشحالی زد. کلبلی از خونوادهش گفت زنش خیلی سال پیشا و تو جوونی از سرطان خون مرده بود و دختر و پسرش هم تو راه دانشگاه اتوبوسشون چپ میکنه و درجا میمیرن. دست کرد تو جیبش و یه دستمال تمیز و در آورد و اشگاهو پاک کرد و گفت بابا جون خیلی سخته که از بچه بیشتر رو کنی اون یه دختری دیگه هم داشت که فهمیدم تهرانه و مهندسه و از غذا هم توپه کربلی میخند و با افتخار میگفت که دخترش از اون مهندس واقعی با سوادست که یه دفتر گنده داره. دختری کربلی سالها بود و باباش قطر رابطه کرده بود. از همون سالی که رفته بود تهران و مهندسی خونده بود و به همه گفته بود ای نداره. بعدشم هم همونجا عروس شده بود. کربلی میگفت من که دوزی و هیزی نکردم. به خدا سپورا و باغونا بندگان خدا. یهو باز شاد شد و گفت سرشون سلامت ولی ساغرم منو دوست داره. ساغر نوش بود. همون شب به هم پول داد و گفت تو سلیقه‌ت خوبه. برای ساقرم یه هدیه خوب بخر. دو هفته دیگه تولدشه. قرار شد برم سفر و چند روزه برگردم و بعدش هم حرفه کلبلی رو ضبط کنم تا خاطراتش رو بنویسم. که آدما میگن که مثلا سیزده و جغد و گربه سیاه و بعضی آدما شومن اصلا مهم نیست چیزی که توی این ماجرا مهمه اینه که اون موجود مثلا نه و خرابکار کم کم تنها میشه کم کم منزوی و عصبی میشه حتی خودشم به این نتیجه میرسه که شاید واقعا موجود بدیه اگه بد نبود که همه همه آدما ازش دوری نمیکردند میبینی چقدر قدرت ویرانی یک فکر زیاده؟ بعد از یه هفته از سفر برگشتم برای نوی کلبلی هم با پول خودش یه لباس دخترونه خریدم و از طرف خودم هم چند تا کتاب و بازی همه رو کادو پیچ کردم نشستم دم در ولی کلبلی نیومد. چند شب گذشت و یه روز دم غروبی صدای جارو اومد. خوشحال شدم و پریدم بیرون ولی کلبلی نبود باید میفهمیدم کلبلی نیست. کلبلی که اون موقع نمیومد. یه پسر جوون بود ازش پرسیدم کللبی کجاست؟ پسر گفت شنبه شب یه ماشین میزنه بهش و در میره میگه وای می میبردنش بیمارستان نمیمرده ولی خب اون وقت شب هیچکس نبوده اونجا دنیا تاریک میشه وقتی میفهمی که اگر بودی توی یه زمان و مکان مشخص یه اتفاق بد نمیافتاد کربلی تو تنهایی مرد مردی که کسی قدرشو ندونست از بس بسکوب بود از اون مشخصاتی که از کربلی داشتم آدرس شرکت دخترشو پیدا کردم یه شماره از اون ای که توش در مورد کلبلی و خوبیاش نوشته بودم رو با اون هدیه ها با یه از آخرین سیگارایی که کلبلی به امتعارف کرده بود براش فرستادن. از اون زمان بود که دیگه دم درمشینی های منم تموم شدن و هیچکسم هم دلیلشو نفهمید ای شرم ساری شرم ساری شرم ساری جز شرم ساری از خودت چیزی نداری ای hey, ناامیدی ناامیدی ناامیدی هست هیش کس انتا خودت خیری ندیدی hey, ای تنگ دستی تنگ دستی تنگ دستی چشمات رو هرچی دلت میخواست بستی ای آستین بردی به چشمای نجیبت دستات خجالت میکشی تو توی جیبت قبول دارم که یکی از عوامل تنهایی فکر اینه که یه چیزی های کسی نهسه هرچند که این فکر یه خرافه صدمن یه, یه بیشتر نیست و یه پول سیاه ارزش نداره اصلا کیه که بدش بیاد رتبه یه کنکورش بشه سیزده؟ اصلا همه ی آدما حتی همونایی که میگن 13 نحسه هم اگه رتبهشون بشه 13 بهش افتخار میکنن یا شما تصور کنین یه گلوله پشمالو با دو جفت چشم آبی رو که بهتون ظلم میزنه و میاد و از روی مهربونی لیستون میزنه با مریضیاتون مریض میشه و با شادیاتون شاد حالا به فرض این موجود یه گربه سیاه باشه چه اهمیتی داره آره قبول این فکرا اون موجوداتو تنها میکنه ولی فکر میکنم اصلا قضیه نحسی نیست خیلی وقتا حتی اگرم باشه یه بهانه است اصلا تنها موندن یه عالم دلیل داره و به نظر من یکی از اصلی تریناش اینه که آدما تحمل قم و بدخلاقی و دردای طرف مقابلشونو ندارن اصلا اونا یه کنسرف میخوان که هر وقت خواستن درشو باز کنن و یه دوست شاد و جینگیر بلا و تر و تازه بپر بیرون براشون انگار یادشون میره دوستی یا مال همه زمان مال وقتی که غمگینی درد و قصه تو دلت قلمبه شده نه فقط زمانای شادی و خوشی و جینگلی مسونی این جوریه که آدمو همو تنها میذارن و میزنن زیر همه همه قولاشون اصلا اگه از من بپرسی میگم آدم نحس و بد و خرابکار باشه ولی بد قول و بی نباشه من مصطفیام و اینجا رادیو هجدهه بنفش بود دخترکی که هیچ موجودی و نحس نمیدونه و سعی میکنه اگه کسی غم و قصه و درد و بداخلاقی داشت درکش کنه و رهاش نکنه اینجا رادیو هجده بنفش بود و شما به اپیزود سیزدهم از فصل دوم اون گوش دادیم اپیزودی که با افتخار تقدیم شد به تمام اون تنهایی های عزیز و تمام کسایی که تنها موندن ما رو در کانال تلگراممون با نام رادیو هجده بنفش با هجده عددی و بخش پادکست های تارنمای بیپتونز دنبال کنید مهربون باشید و شاد و مهربون چون زیر بار دوستی جون کنده بودی از باهرهای گردن شرمنده بودی هر چی بهت تبدیم شد تو و کلک بود قلبت شکست از که دستت بیخی نمند بود ای صبر کردی سب اما بی علاجه آسر کردن روی دنگت ها جواگه مارون حریف شرشره چشم ترت نیست، سمفی که باید باشه بالای سره بنید نه جنگ فرار کن فرار از مردم درنگ فرار کن فرار